صف از وقت ولی ترک داری مثل دل من که کمر رو یادکده. دو قوانینی داره که بی نگاه ها لیج میشه به هت اذرار. ممکن ارزو توی حباب تو یه تو وقتی سنگ غبرت رو با گلاب بشوره. اینجا غریب نوازن، به طرز فجی. اگه تک به پری میگیره ترس عجیبی. مهمترین چیزی تو ولاد زنده بمونی، ولی ما انگوش و متشن به خونی. سایکون سر پایین باشه راه صاف چون جنداش خوره پشت سر، منتظر گرفت. باز قلم به چرخ به حنجره خیابون مثل یخونس بدون پنجره. وقتی وارد شدی نگاهی به بیرون نداری پس یاد بگیر که بمونه سنگ دله داره بازم سر همه لحظه های من توی خیابون اگه مثل مایی از جنس مایی پس بیاد فوش همین بوده قبلا همین نمیمونه تا بعد زندگی یعنی بمونیم تا بمیریم ما توی خیابون میدونی تأبیر میشه اینجا تفریح چی اینکه برد قمار رو به طرف تبریک بکی واسه پول تاب داری ولی کوداواه تابت فقط ول میدی بیرون کمی دل لبت لبیه بی خیال باشی زمان بگذره بیشتر اوج خندت میشه یک ذره نیشان یهای میاد میگه خنجر پشتمه رو صورتش جای پنجن گشتمه همه چی میریزه به هم رسمش اینه بی توجه به اینکه یارو دستش چیه اگه به ماها بندازن یه نظر همه میبینن تو جاممون هر روز یه نفر کمه مین هست و رسم پست نه اصل منه نگو بس کن رس مو هست خب دست به قمه باز منو میبینی و میگی چه میره میتو تا نباشی تو جمع امانه میفهمی خب داره بازم میگذره همه لحظه های من توی خیابون اگه مثل مایی از جنس مایی پس توش همین بوده قبلا همین نمیمونه تا بعد زندگی یعنی بمونیم تا بمیریم ما توی خیر خش به رحم ازم شیطان زیر نمنم بارو شاید بتونه به شوره یکم از رخت دغهام چون که زندگی نه به بار نه به وقتی که دور و نه حسار نه صدای فردی که بگه برو جلو و پشت وا پس پسنده میمونم اگه خوش شانس باشه تا چش زدیم ما دیدیم که حبل شدیم جای ننه بابا آسفالتو بغل کنی من بچه خیابون خیابونا نیستم ولی خیابونا بچه من منو نیست کمترین احتمالی که من, من و ترک کنم تو تو اشتباهی هر شب و به همین رسم آشنا با سنت قدیم که خیابون داره رو قلم قدرت عجیب عادت میکنی وقتی که هر شب توشفا بذاری اسم ماه تو تا عبد میمونه روش شادگاری داره بازم هم ذره همه لحظه های من توی خیابون اگه مثل از جنس ماهی پس بیاد توش همین بوده قبلا همین نمیمونه تا عبد زندگی یعنی بمونیم تا بمیریم ما توی خیابو داره بازم ایک همه لحظه های من توی خیابو اگه مثل مایی از جنس مایی پس بیادوش همین بوده قبلا همین نمیمونه تا بعد زندگی یعنی بمونیم تا بمیریم ما توی خیابو